سوره سور الرحمن يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم بما الله بخشاگنده با رحمت است ای اهل ایمان از خداوند و پیامبرش پیشی نگیرید و حرمت خدا را نگاه دارید که خداوند شنوا و آگاه است ای اهل ایمان صدای خود را از صدای پیامبر بلندتر تر مکنید و آنچنان که با یک دیگر با صدای بلند سخن میگویید با او با صدای بلند سخن نگویید که عملکرد شما باطل و بیارزش ارزش می‌گردند و خود خبر ندارید. کسانی که صدای خود را در محضر پیامبر پایین می‌آورند همان کسانی هستند که خدا به واسطه حرمت نگاه داشتن قلب‌های آنها را خالص کرده است. بدانید برای آنها مغفرت و پاداشی بزرگ است کسانی که تو را از پشت اجرا صدا میزنند اکثرشان اهل خیرت نیستند چنانکه آنها صبر کنند تا تو خود به سوی آنها بروی برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و باگذشت است ای اهل ایمان اگر فاسقی خبری برای شما آورد، تحقیق کنید تا مبادا بر اثر این خبر ناآگاهانه به مردم آسیب برسانید و سرانجام به خاطر کاری که کردید پشیمان شوید. بدانید که پیامبر خدا میان شماست، چنانکه در بسیاری از امور از شما پیروی کند، به رنج و مشقت خواهید افتاد. بلی خداوند ایمان را محبوب شما کرده و آن را در قلبهای شما آراسته است و کفر و گناه و اسیان را منفور دلهای شما کرده است. هر که اینچون است به راه رشد و عظمت دستگافده است. این فضل و نعمتی از جانب خداست زیرا خداوند آگاه و حکیم است. چنانچه دو گروه از اهل ایمان به جدار با یک دیگر پرداختند، بین آنها صلح و آشتی برقرار نمایید. و اگر یکی از آنها بر دیگری ستم کرده است، با ستم کار بجنگید تا اینکه به فرمان خدا بازگردد و اگر به فرمان حق بازگشت، عادلانه بین آنها صلح برقرار کنید. همواره با عدالت رفتار کنید، زیرا خداوند عادلان را دوست دارد. انما المؤمنون <تصال> اخوة فاصلحوا بين اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون بدانید مؤمنان برادران یکدیگرند پس بین برادرانتان صلح و سازش برقرار کنید و حرمت عوامر الهی را نگاه دارید امید آنکه مشمول رحمت الهی شدید ای اهل ایمان مبادا گروهی گروه دیگر را مسخره کنند شاید آنها بهتر از اینان باشند مبادا گروهی از زنان زنان دیگری را مسخره کنند شاید آن زنان بهتر از اینان باشند هیچگاه از یک دیگر عیب جویی مکنید و هم دیگر را با القاب زشت صدا مزنید حقیقتا پلیدی و ناپاکی آن هم بعد از ایمان آوردن زشت و زننده است بدانید هرکس به درگاه خداوند توبه نکند بدون شک ظالم است ای اهل ایمان از بسیاری از گمانهایتان اجتناب کنید زیرا بعضی از گمانها گناه است در امور یکدیگر تجسس نکنید و از هم دیگر غیبت نکنید آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ همه از آن کراحت دارید پس حرمت عوامر الهی را نگاه دارید و بدانید خداوند توب پذیر و باگذشت است ای مردم ما شما را از یک مذکر و یک مهندس آفریدیم آنگاه شما را گروه ها و قبایل مختلفی قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید بدانید گرامی ترین شما نزد خداوند حرمت گزار شما به حریم الهی است براستی خداوند از همه چیز آگاه و باخبر است عرب با دیانشین گفتند ما ایمان آورده ایم بگو شما ایمان نی آورده اید بلکه اسلام آورده ایم تسلیم شده ایم زیرا هنوز ایمان به قلبهای شما وارد نشده است چنان که خدا و پیامبرش را اطاعت کنید از پاداش عمل کرده شما چیزی کم نخواهد شد زیرا خداوند آمرزنده و باگزشت است بدانید اهل ایمان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان داشته باشند و دیگر شکی نداشته باشند و با اموال و جانهای خیش، در راه خدا جهاد کنند بیشک اینان در ایمان خود صادقند. بگو آیا میخواهید خداوند را از دینداریتان آگاه کنید؟ خداوند آنچه را در آسمانها و زمینه است میداند بلکه خداوند به هر چیزی آگاه است. بر تو منت میگذارند که اسلام آوردند بگو به خاطر اسلامتان بر من منت نگذارید بلکه این خداست که باید به خاطر هدایتتان به راه ایمان بر شما منت گذارد اگر صادقید. خداوند لیب و نادیدهای آسمانها و زمین را می داند و بیشک خداوند نسبت به عمل بیناست بینات <تصفيق> بِمَا تَعْمَلُونَ سُبْحَانَ ٱللهِ ٱلْعَلِىِّ بلند مرتبه بود از این از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم